از میکنم مطالبی را که تا به حال عرض کرده اجمالش این شد که ما امام را فقط برای اداره کردن حکومت و زعامت مسلمین فقط برای این کار نمیخواهیم این یکی از کارهای اوست ولی کارش منحصره به این نیست فقط برای اجراع صحیح قانون و جلوگیری از ظلم و جلوگیری از گناه و مانع شدن از ارز می کردن کسی بر کسی و اجراع حدود و قضاوت صحیح فقط برای این کارم نمیخوان این یکی از کارهای امام که امام هم زعامت مسلمین میکند و امور مسلمین رو اداره میکنه. و هم جلوگیری از گناه می کند و از تعدیات و ظلمها ها میکنه اینا از جمله کارهای امام ولی کار امام منحصره به اینه یکی از اساسی ترین کار امام بیان احکام و توضیح و شرح احکامی که بیان نشده است از جانب رسول الله والی والی به دست مردم نرسیده و عرض می شود به اینکه که و برداشت های که ادهی از همونهایی که به دستشون رسیده قلط هایی را که برداشت می کنند و از آیات و روایات خلاف فهم صحیح استفاده می کنند کار امام یکیش جلوگیری از اینه و خلاسه چنون که هفته قبل عرض کردیم یکی از کار اساسی امام حفظ مکتب است که دین رو نگه داره و دین رو بیان کنه بنابراین نگهداری دین به این است کسانی که از روی عمد یا نفهمی یا جهالت برداشت غلط می کنن از آیات و روایات و خلاف معنا می کنن اینا رو به مردم حالی کن و اون اموری که بیان نشده است و در دسترس مردم نیست بیان کنه و این قافله انسان ها که تا قیامت است و دین دیگری هم نخواهد آمد و این انسان ها هر روز رو به کمالند باید دین متناسب با عصر رو عرضه کنه این انسانها هر روز رو به کمال دارند همجور دارند ترقی میکنند باید یه فردی باشه که معلوم بکنه مطالب دین تا چه حد ترقی داره این ممکنه در مطالبی را حالا عرض میکنم عرض میشود به این که ابن اول حدید یا عالم سنیه این در بعضی از خطب نحجل بلاغه که میرسه می این مطالبی که امیر المومنین سلامت الله و سلامه علی اینجا فرموده مثلا در یه جمله شاید, شاید شاید یه وقتی هم شاید گفته باشم در یه جمله خطبه خیلی کوتاهی که امیر المعنی میتونه مزقد احیا اقله و اما تن نفته حتی دق جلیزه و نطف قلیزه فبرق لهو لام اون کسید برق تدافعت الخلاب و الى باب السلامه و محل الاقامه این جملات رو میگه میگه این تمام عرفان رو امیرالمومنین تو این دو جمله جمع کرده مطالبی را از امیرالمومنین تو اجل بلاقه که نقل میکنه میگه اصلا صحابه پیغمبر صلاحیت فهم اینا رو ندارن اصلا نمیتونن بفهمن اینا رو اینا یه مقدار زیادی ملایی میخواد درس خوندن میخواد که فلاسفه بعد از این همه زحمت روشته های خودشون وقت میگوام این کلمه همینمونی یعنی چی؟ میگه این صحابه پیغمبر صلاحیت فهم و درک اینا رو نداشتن چرا رسد که بخوان اینا رو به مردم الغا کنم و برای مردم بیان کنند. خب این دینی که هر روز رو به تکامله و مطالبی لازم داره متناسب با فهم درک مردم در هر زمان شاید در یه روایت از ساده اون فرمایت خدای تعالی که در آخر زمان گروهی متعمقین خواهند آمد و لزوم که سوره توحید و سوره شاید حدید نمیدونم یا چیزی سوره دیگری رو برای مردم فرستاده برای اون متعنق ها حالا به ما که بگن قلوه الله این بود یه عمقی داره این عمق ای رو کی باید بیان کنه مگه مردم میفهمن مهیر کسی صلاحیت درک ای رو داره این قافله انسان ها که هر روز رو, رو به کمالن و داره علم و معرفتشون زیاد میشه باید یه نفر باشه دین متناسب اون سهم رو برای مردم بیان کنه از شاید به حالا یادم افتاد من از رو بگم به قصه از قصه های دنیا از می شود بین که آقایی که الان فوت کرده از اهل علم بود در تهران ساکن بود این قضیه الان فوت کرده این خودش متولد اراق بود زبان عربی خوب بلد بود دو ما یه سال مشرف شدیم عمره مکه مشرف شدیم خب ایام عمره هم خیلی شروعونی خلوته این قضیه هم شد من سی سال پیشه که این نقل می کرد گفت اونجا مشارک شدیم عمره و مرسیم شبا روزات مسید الحرام نماز مخوندیم میشستیم گفت یه وقتی بنده خدایی پلو من آمد نشست و خیلی لباس های نظیف اگه دیده باشیم بعضی از این سعودی ها خیلی لباس های سفید و چفیه خیلی سفید و خیلی قرص تمیز و پلو من نشست. مدتی نشست و بعد از من پرسید که اهل کجایی گفتم اهل گفتی شغلت مثلاً چیه؟ آخوندم مثلا چه می فلان خصوصی یاره پرسید و پرسید و پرسید و بعد گفت مذهبت چیه؟ گفتم جعفری اون وقتا حالا باز یه خورده ایران اومده جلو و رو اومده در افتر همین اون وقتا جعفری اصلا می گفت اصلاً خلاصه آدم نیست ولی بفتا گفتم جعفری نمید یه لب لب خندی زد بعد گفت من ازش کستم تو چی کار هستی اسمید چیه چی کار هستی خلاصش گفت من قاضیم در تایف خلاصش شغل چیه اسمت چیه کارت چیه فلان بسیدم مذهبت چیه گفت انشاءالله جعفری عجب این یه چیز مهم نی بود برای من یکی دونه آخوند سنی قاضی سعودی جعفری یه گفت این گفت انشالله جعفری اون خیلی جالب اومد برا من گفتم چیتا شدی جعفری شدی؟ گفتش من در مصر زرز مخوندم و یه رفیقی داشتم اونجا شد اهل مصر بود با هم رفیق بودیم بلاخر من در اصلا که تکمیل شد آمدم این رفیق هم گاهگاهی کتاب های سعودی خیلی عقب بود از نظر علمی، این کتاب هایی که در مصر و اینا چاپ میشد گاهی بر من میفرستا گفت یه کتاب فرستاد بر من دیدون نوشته نهجل بل آقای علی ابن عبیتال هیچ اخلاص نداشتم به علی گفت این کتاب ها رو اینجوری تو اون تاختی بالا من کتاب شد این رفیق ما بر من فرستاد بوده. این کتاب اونجو بود کتاب گفتش به اینکه که یه مدت ها بوده گفت یه شب نمیدون چرا خوابم نمیدون عالم گفت نبود خوابم نمی, نمی هر چی قلب دادم خوابم نبود یه دفعه به دهنم رسید گفتیم ما که هر کتاب مزخرف و هر مجله و هر روزنامه و هر رومان رو خوندیم داری بیره این چی میگه خلاه رفتیم و بردیم و خطبه اول رو که خونم و خود دقت کردم. گفتم مثل این که این خدایی که این معرفی میکنه من هنوز نشنخدم این توحیدی که این معرفی میکنه من این توحید رو ندارم یه چیز دیگه داره میگه و کمال و توحیدهی نفش صفات آن عمل شعادت کل صفتن انها غیر المنصوب و شعادت کل منصوبه خوندم و کردم دیدم این توحیده ای من توحیده ای رو که ندارم ببینیم چی بشه خطبه دوبون رو, رو خوندم خطبه سبون اونهای که اهل زبانن این جذابیت کلمات تعمیر المومنی رو اونا خوب میتونم بفهمن هم از نظر لطف هم از نظر معنا میگفت خلاصه معطلت نکنم از آن صبح رو گفت و من داشتم نه جل بلاخت مخوندم همجور خوندم اینقدر این من رو جذب کرد که تا ازاد صبح نجل برام این بحثت هم خب یه چیزهایی در میمد از توش لقد فلان و هوای علمو ان منزلتی نین من منزلت القطب من الرها و عن ان سیل ولا یرغا الگ یطیر ولی دام چی چی کردم و دوبومی آمد چنین کرد و گفتم معلوم میشه یه ای در کاره من باید تحقیق کنم شروع کردم خلاصه به تحقیق یه مقداری کتابای شیعه رو سعی کردم با زحمت پیدا کنم خلاصه فهمیدم این حقمی خراب شده شروع شدن ملت تضیع شده حق شروع کردم کتاب هایی به دست کتابهای یه روزار کتاب های شرف الدین به دست کی به دست کی و خلاصه یه روز رفتم بزن بچه هم گفتم که بنده امروز میخواهم داخل در مذهب جعفری بشم شما هر کاری دلتون بکنید من میخوام این کار اختیار کنم و تجعفرت و بسم الله که اون آقای چی گفته بود اون سید همیری که گفته بود تجعفرت و بسم الله اون آقا میگفت اینم خون شاید اون آقا که برای بنده نام این مقصود عرضه از این قضیه که حالا شدت من داشت من یادم رفته مقصود از بنده است که این مطالب امیرالمومنین المومنین رو چی قدرت داره که برای مردم بیان کنه و چی میتوانه بفهمه و چی میتوانه بعد از فهمیدن اینا رو القا کنه در تمام علوم در تمام رشته ها شما ملاحظه بفرمایید کتاب ها رو که ملاحظه بفرمایید اینها رو خواهید دید که تمام علوم لر سر نقش میرسه به امیرالمومنین نوشتن با مدارک و از سنی و شیعه نه اینکه الا شیعه ها نوشتن حالا اینها رو کار نداریم به هر حال دین مبین میخواد این دین رو به کمال است نه اینکه رو به کمال یعنی از اول ناقص بوده متناسب فهم و درک هر کسی مطلب داره دین اونطور برای کسی نهنم و عاشر الانبیا امرنا ان تتكلم الناس قدر عقوله و هر کی متناسب فهمش حرف بزنی من می‌خواستم پیدا کنم رو ولی از مطالب اول دیگه گذشت و وقت نشد این مثلا فزونی است که رو آیا خدا میتونه چون که اون وقتا گفتیم خدا میتونه تمام آسمون ها و زمین ها رو توی تخم مرغ جا بده که نه تخم مرغه بزرگ بشه نه آسمون و زمین کوچیک بشه اینو مکرر از ائمه حیات پر امام به یکی یه جور جواب میده به یکی یه جوری جواب میده به یکی جواب میده که الان خرسیدو میتونی نگاه کنی بله ماهو میتونی نگاه کنی بله ستاره ها رو میبینی بله همجور که نگاه میکنی و ستاره و چندین هزار ستاره رو داری میبینی الان نه چشمت بزرگ شده نه اونا کوچیک شده ولی اونا تو جای جاید این یه جور جوابه متناسبه با فهم او جواب داد به یکی گفتن به این که این لایکون این نشودنیه چیز نشدنی قدرت به اون تعلق نمیگیره خب اینو عوام نمیتونه درک کنه قدرت و توان به کارهای شدنی تعلق میگیره یه چیزی قابل باشه که بشه وقت بگیم تو میتوانی بکنی یا نمیتوانی اما چیز نشدنی که ممکن نیست بشه دو دوتا شیشتا تو میتونی دوتا شیشتا بکنی؟ خب بابا این نشدنیه دو دوتا شیشتا نمیشه بنابر این به یکی یه جور دیگه جواب دادن هر کسی را متناسب بفهمش خطبه های حضرت رضا سلام علیه راجع به توحید استدلال های حضرت رضا سلام علیه این یه جور دیگه با صلیق یه جور بحث میکنه با یهودیه یه جور بحث میکنه با مشرکین یه جور بحث میکنه بالترعی مذهب هر کسی متناسب بفهمخودش من به متناسب خود بنابراین این دین یه نگهدار میخواد برای این مکتب ما یک نفر نگهدار رو لازم داریم هم که فهمها و درجهای غلط رو جلوگیری کند و هم مطالب گفته نشده رو برای مردم بیان کند و هم با سطح فهم و درک مردم که همینجور پیش میرن مطالب دین رو هم رشد بده و ترقی بده و به اون مراحل کمالش بیان کنه برای مردم بنابراین مایست چنین کسی رو لازم داری و کار مهمترین کار امام اینه یعنی یکی از کارهاشین اینه مهمترش رو من درز نکنم یکی از کارهای امام اینه و اگر به اینجا رسید دو مطلب چونون که در هفته قبر از کردیم دو مطلب دیگه توش لازمه یکی این که از نظر اسمت باید معصوم باشد یکی از نظر کمالات دینی باید من منفل ارز باشد باید باشه از نظر اسمت باید معصوم باشه چرا معصوم باشه به همون ملاکی که باید پیغمبر معصوم باشه اگر اشتباه بکنه چه عیبی بیداره اگر معصیت بکنه چه بیداره همون چیزهایی که در باب اسمت در باب نبوت بحثشو کردیم که دیگه نمیخوام تکرار بکنم و همون ملاکی که حفظ است و حفظ دین و بیان کمال برای مسلمون ها این احتیاج به یه نبی معصوم داره این همین مطلب در امام هست امام هم باید معصوم و عین همون مطلب که در پیغمبر باید از نظر دینی مطالب رو بتونه برای مردم بیان کنه و مطابق درک و فهم مردم مطالب رو به مردم برسه تا حجت بر مردم تمام شده باشد اگر بنا بشه نتونه با استدلال ای معارضه کنه اشکالات ای رو جواب بده راه فهم و درک ای رو نتونه جلوگیری کنه این حجت بر ای تمام نیست پس بنابراین به همون ملاکی که پیغمبر باید از نظر دینی برتر و بالاتر از همه باشه امام هم همین کار باید لازمه که باشه بنابراین این دو جهت غیر از تعیین خدایی دیگه هیچ راهی نداره کی تعیین کنه کی تعیین کنه این رو که این آقا معصومه کی تعیین کنه این رو که این برتر است از نظر علمی از همه و می تواند تمام از فکرها رو اداره کنه در امر دین کیا میتونه تواند این رو کنه غیر از خدا کسی نمی تواند کنه؟ کنه ولیداز که خدا تعیین کنه از می شود که اون قضیه سعد ابن عبدالله که قضیه است که ای آمد خدمت حضرت از کردی که وقتی هم برای جهت دیگری یه تیکش رو از کردن چون قضیه مفصلیه سید ابن عبدالله آمد خدمت حضرت اسکری سلام الله علیه و, علی و دید فرزند فرزندی 23 ساله 4 ساله من الان یادم نیست 5 ساله در خدمت حضرت حضرت فرمود که سوالاتی از حضرت اسکری کرد حضرت به این فرزندش سلام الله علیه فرمود جواب بده سوالاتت رو از امامت بکن بعد حضرت سوال کرده جواب داد سوالاتی کرده بود که یکی ست سو سوالاتش که یه وقتی گفتم این بودش که آیا ایمان آوردن عبیل رو و عمر و امثال زالک آیا خوفند بوده یا تواند بوده یا خوفند بوده به رقبال آقا خوف خوفند ایمان آوردن یا به میل و و تو ایمان آوردن اونو جواب داد حضرت و من دیگه حال نمیخوام اونو مستلتون کنم بعد سوال میکنه از حضرت حجت سلام آقا علیه لماذا يجب على الله تعالی که و تعالی که امام نصب کنه چرا بر خدا واجب امام نصب کنه چرا مردم نصب نکنند حضرت میفرماست مفسد تعیین کنند یا مصلح از کد مصلح گفت میتونن از باطن اشخاص بوتله بشن که این مصلح هست؟ مردم ولا جمع بشن یه نفر مصلح تعیین کنن میتونن بفهمند که مسله است آیا این نظری که رو اشخاص میدن؟ میشه که اشتباه و غلط در بیاد و مصلح نباشه گفت بله فرمود به همین دلیل باید خدا تعیین کند تا مصلح تعیین کند بعد فرمود میخوای برا تو یه چیزی بگم که خوب برات واضح بشه؟ وقتار موسا سبعین از رد لمیقاتنا موسی علیه السلام هفتاد تا آدم خوب تو لشکر توی از شد امتش انتخاب کرد که ببره کوه طور با اونجا مناجات موسی که خدا به میزنه با موسی بفی همان وشن و من ببینن هفتاد تا آدم خوب تایی انتخاب کرد سوالا ما از شد آمدن اونجا قالو ان الله خدا رو باید خلاصه آشکار به ما نشون بدی تا باور کنیم ما با حرف باور نمیکنیم فرمود اگر موسی علیه السلام نتواند افراد خوب رو انتخاب کنه اون وقت مردم میخوان افراد خوب رو انتخاب کنن که باطنشون با ظاهرشون جور در بیاد و مطابق در بیاد کی میتونن انتخاب کنن بنابراین این صفت اسمت و صفت علم که علمش برتر همه و معصوم باشد این دو تا صفته که حتما باید در امام باشه و این رو غیر از خدای تعالی کسی دیگه نمیتونه تعیین کنه این یک کلمه هم عرض کنم و تمام شد شاید یک کسی میگه خب که لزومی داره یه آقایی رو ما تعیین میکنیم برای اداره کردن حکومت یه آقای رو هم خدا تعیین بکنه برای اداره کردن امور دینی مردم دو نفر باشن یکی برای اداره مملکت باشه و کارهای اجرایی رو به قول ما عمل کنه یکی هم برای علمی رو عمل کنه امیرالمومنین بود هرکی کی مسئله مشکل داشت میپرسود دانشونه امیرالمومنین عمرام بود سر کار خودش مشغول کار بود چه یک بشه نه اینجوری مطلب درست نمیشه و کسی که معصوم نباشد روی کار اگر آمد این نمیگذارد که دین ولو بیانش اونجوری که میخواد خدایه برای مردم بیان بشه اصلا محصوم این محصومون که نمیخواد هم حکومت کنن که ولی حضرت حضرت تو روایات داره از صادف داره مباره میگذار این کاش این تاقیه شاید تعبیر میکنه یعنی این منصور و اصحابش میگفت میگفت منو با شماها توی یه جایی میگرفت زندان میکرد توی مثلا قلعه‌ای توی جایی محبوس میکرد که هیچ کاری به هیچ کسی نداشته باشیم و من بتوانم این مطالب دین رو برای شما بیان کنم مگه میذاشتم؟ مگه میشه؟ وقتی خدای تعالی تو قرآن و مذبولا توی او امر المصرفین خب اینه بیان کنه چکار کنه؟ این معنی که این آقایی که روکاره التماس دوها وَلَا تُعْمَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَاَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ تُرِدْ إِلَّا الْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَلَا تُعْمِنْهُمْ آسِمًا او کفورا اینو چی بکنه؟ از می شود به که و تلک از می شود به که ربهم و امر کل جبار انید و اطبه او فیها به دنیا لعنه خب مگه این دوتا میتونن با هم دیگه بسازن؟ این بیان احکام خدا میکنه او میخواد ریاست کنه ریاست او با بیان این ناسازگاره مگه میذاره بیان کنه؟ مگه میذاره که حق به دست مردم برسه؟ معاویه اومده او تو مدینه بعد از شهادت امیر جلسه ابن عباس داشت ابن عباس خب از شایرده بود و محدث بود و تفسیر قرآن بلد بود اومد تو مجلس اونا به اینا رد شد این همه اصحاب بلند شدن ابن عباس از جوش کن نخوب خب ابن عباس چرا بلند نشدی از جاست مثل اینکه بقیه رفقات بلند شدن چرا حرکت نکردی شاید اوقات تلخ از جنگ سفین که با شما ما جنگ کردیم و ما مثلا پیروز شدیم اوقات تلخ از این مطلب. خب ولی ما چه کنیم که عثمان مظلوم کشته شده ما خونقایی عثمان رو میخواستیم بکنیم ابن عباس گفت عمر مظلوم کشته شد پس چیز اونجا داره نالت در نیمه به تعبیر من گفت عمر که مظلوم کشته شد خب عمرم هم کشتن چرا اونجا خونقایی نکردی اینجا خونقایی کردی گفت آقامون قاتلش مشرک بود اینجا مسلمونها ها کشتنش گفت اینجا حجیت بر تو هست مسلمونها جمع شدن و عثمان رو کشتن من میشه بنابر مبنای شمای که لا تشتم و امتی علی خطا به خطا نرفتن خلاصه من مقصودم اینانیست خیلی بحث مفصل و طولانیه گفت ای ابن عباس باید فضائل علی رو نگ گفت ما رو از قرآن خوندن من میکنی گفت نه قرآن بخونید ولی بر مردم تفسیر نکنید گفت عمل کردن به قرآن و فهمیدن قرآن بالاتر است یا خوندن قرآن گفت فهمیدن و عمل کردن ولی اینه که شما میگین نکنید بفرستیم پیش دیگران تفسیر کنند گفت قرآن در خانه ما نازل شده بفرستیم خونه ابی صوفیان و عال عبی صوفیان تفسیر کنه براش مردم؟ و همین جور مقاحصه حق نداره آیه قرآن بخونه حق نداره مسئله بگذیم سابق اینجوری بود دیگه گاهی بعضی مسئله, مسئله بود مسئله تو یه مسئله میخواست بگیم، این برمی خود به یه جهایی معابنت حکومت جالب جائز نیست مثلا اون مسئله تو اون مسئله است دیگه یکی از مسائل نی بود ما اون من نی داشته مسئله کس بگه مسئله گفتن جلو گیری می شود نمیدونم حدیث خوندن جلو گیری می شود تاریخ خوندن جلو که اون دلش می باید بخونه بنابراین اون مقصد حاصل نمیشه، اگه حکومت علا باشه بر خودش و از می شد مبین احکام یکی دیگه باشه این دوتا با هم بالاخره حرفشون میشه. اون روشی که اون می, می خواد حکومتش رو تثبیت کنه و ریاستش رو تثبیت کنه حلام و حلال و گناه سرش نمیشه این آقا میخواد احکام رو لاغل بیان کنه نمیخواد اجرا کنه حد اقلش میخواد میذارن بیان کنه مگه میذارن واقعیات به دست مردم برسه پس بنابراین نتیجتا اون که باید تعیین کننده حکومت خدای تعالی باشد تعیین کننده امام خدا باشد که هم بهترین فرد رو انتخاب کنه معصوم از نظر گناه و هم عالمترین فرد رو انتخاب کنه که مبین احکام این یه نفرم باید باشه که این دوتا با هم حرفشون نشه و منافع همدیگر رو مزاحم نباشند که اون وقت اون که میگوید و اون چرا که میکند قولا و عملا بر طبق رضای خدای تعالی این است که صلاحیت داره امام باشه و به فرمایش شاید امام ان موجئ الامام اماما لي به امام رو که خدا امام قرار داده برای اینکه مقتدای مردم باشه گفتارش کردارش روشش سیرهاش این مقتدای مردم باشه و به ای اقتدا کنند قولا و عملا و ای غیر معصوم صلاحیت نداره باشه هفته گذشته ذکر دیم عطیه الله وعتی و رسول و اول الامر اگه علی الامر معصوم نباشه تناقض بین عطی الله و عطی و الامر واقع میشه او رو شرحشو دادیم شاید چیزی هم بخواستیم در اطراف او بگیم که گذشت اللهم شلی علی محمد و عجل فرق.